نو به آیین کهنه نیاکان در ای از بنیاد اروپایی زرتوش شناسی دکتر خسرو خزایی پردیز بنیانگذار بنیاد اروپایی زرتوش شناسی سرود به تمامی دوستان هموندان هممیهنان و یاران گرامی ورود تمام دوستان و استادان ارجمندم رو به نشست همگانی بنیاد جهان بینی زرتوش به فرنشینی دکتر پردیس خوشامد میگم پیشاپیش سپاسگزاری میکنم از بزرگوارانی که از سراسر دنیا کشفا بودن با دشواری که داشتن و افتخار شرکت در این نشست رو به ما دادن به ویژه درود دوباره و خوشامد میگم خدمت مهمان گرامی موبد گرامی، موبد کامران جمشیدی خیلی لطف کردید، مهر کردید که تشبه بردید ما در خدمتون هستیم نخست نشست رو با یک بند از گات من آغاز میکنم. سروده 16 هم یسنا حات 51. کسانی که در اندیشه و گفتار و کردار نیک به هم پیوستن بند 11 ای مزدا، آن دوست یک رنگی که به زرتشت اسپندمان یاری دهد چه کسی میتوان باشد جز آن که با راستی خود را هماهنگ کرده و با آرامش همگام شده است چون این کسی که رهرو راستی و پیرو اندیشه نیک است به درستی شایسته هموندی انجمن موغان میباشد من دوباره خدمت موبت گرامی موبه جمشیدی خوش آمد میگم درود میگم خدمتون نخست ایشون سخنانی دارن که ما به گوش جان میسکریم و پس از اون اگر پرسشی بود باز هم یاداور میشم که دوستان مهر کنن و عدد یک رو بزنن تا بتونیم به پرسش ها از طریق استادان و مهمان گرامی برنامه برنامهمون پاسخ بدیم خواهش کنم جناب موبه در خدمتون هستیم. بفرمایید. بخشنوری اهو رامزا خداوند جان و خرد و با درود بر شما دوستان که خب زحمت انجام این کار رو کشتید تا به اینجا و با درودی هم به همه شما باشندگان گرامی در این نشست خودمانی اگه بفاید بگیم قدی پشه اجازه بدید که ما همیشه با یک دو بند کوتاه از مجموعه اوستا از نیایش های همیشگی آغاز بکنم و بعد در خدمت خواهم بود و کانال کوتاهی خواهم گفت در رابطه با خب از آنچه که همازوری میگویم آغاز میکنیم و بعد خوشک خواهم گفت و بعد باز میگذاریم در همیشه در پرسش و پاسخ هستش که برای گوینده هم همه چیز روشن نیست که کسانی که هستند چه پرسش در ذهن دارن یا چی ها میخوان بیشتر بیدن در پا پرسش و پاسب بیشتر روشن پس با پروانه شما خواهش میکنم در فکرتون هستی موضوعیه باست <تصفيق> نوترهو رای مذدا شم و هو و هستی عوشدا یادشای رهشدای شم یتا اهو واریو اطارت ش اشاد چیتهچا وانگهے وش دزدا منانگ هو شیوتننام آنگهے وش مزدای شطرمچا اهو راا یم ریگوبیو بدت واسدارت عشم و یتاهو دیگه برای همه آشناست و دیگه هرکس که به روی نام بهدین، زرتشتی، مزدی اصنی بر خودش میگذاره دیگه دست کم این دو رو باید همه بدانیم و به چیمش یا میشش مفهومش باید دیگه درونی شده باشه در ما وقتی که از اشا میگیم از راستی و درستی میگیم درستی چه کابینه چی در ما بیدار میشه چه احساسی اگه بخوایم بگیم در ما بیدار میشه با گفتن این واژه ها آیا راستی تا چه حد در ما درونی شده در همه ما درونی وقتی میگم یعنی اینکه نیازی دیگه به اندیشیدن در موردش نیست باید بخشی از اتومات به خود معروف خود, خود به خود خودی وجود اون شده باشه و راستی خود, خود نیکی است و خوشنودی است این در مورد خوشنودی یا خوشبختی یا هر چیز رو به اون رضایت درونی که در واقع بالاترین خواست هر کسی هست در زندگی چیزی خیلی جالبه من همیشه گفتم و اینو باید همه هم باز بدانیم که چقدر در این کوتاه نیایش در این کوتاه جمعه همه چی بیان شده از الفاش تا اومگاش به قول نروف یعنی از عشا آغاز شده از اون نظم و فرمبنای راستی و پاسخی به این که و خوبی چیست که در است، در راستی است و به کجا می به اوشتا می به خوشنودی می انجامد این به نظر من بسیار هم در واقع بوده است و از اون یک درونیه برحال اون گویندگان یا گوینده اولیش اومده و همجوری اتا که یک منیفست در واقع حازمانی یا اجتماعی است که مبنا بر مبنای راستی است خرد است و گزینش است گزینش آزاد گزینش حالا اگر آهو و, و که بیشتر برگردان کردن راهنمایان یا راهبران بران دین دنیا بدانیم به هر روی اگر اینها رو هم به داشته باشیم باید گزینشی باشند و مبنای گزینش همیشه راستی درست مبنای برتری کسی و دیگری یعنی اگر ما برتری داشته باشیم در کار هازمانی اجتماعی فقط بر مبنای عشاست بر مبنای راستی درستی که اونم با وهومن یا اندیشه نیک و بقیه آنهای که ما هم شاسپندان می در پیوندی تنگاتنگ تنگ هستم همازوری آه در عوضای کشتی داریم که سه هنگامی که صده میشیم می شیم کشتی رو می خونیم که هر وقتی می خونیم می همازور بین همازور هماشو بیم. هما زور بیش کرفه بیم هم کرفه کرفکاران بیم دور از وناه و وناه کاران بیم هم کرفه بست کشتیان و نیعکان و بحان هفت پس حتی از دیگاه اگر بگوییم دینی از دیگاه پدران و مادرانمون در درازای تاریخمون همیشه نگاه به همازوری بوده و فقط هم نه با همون که در این نوشتار هست در این گفتار بود نه فقط با بسته کشتیان یا زرکشتیان بلکه با همه انسان های نیک هفت کشور زنی یعنی همه جهان چرا که نیکی است و از هر کسی هم که این کردار نیک سر بزند با ما همراه است با ما همگام است چرا حالا این از کجا میاد؟ همه این برمیگرده به اون چیزی که مابش یگانگی می و میخوام از همین آغاز سخن برای کسایی که خب منو میشناسند یا از من شنیدن یا حالا نوشتارهای منو خوندن میدانند که من چگونه میداندیشم و میخوام از همین آغاز یک چیز رو اینجا ذهنمون بذارم و اون چیزی که بهش میگیم یگانگی میخوام یگانگی رو از داستان یک تا خدایی و اینهای خود دور کنم من. داستان خدا و خدای اینا اونو باید ما در در مفهوم زرتشتیش اول بفهمیم تا بعد اصلا نامی به نام خدا برزابان ولی برای آنکه اون خدای زرتشتی رو بشناسیم باید اول به خدایی برسیم آن چیزی که همواره گفته شده همواره که میگن حال اون کسانی که بیشتر ردیشیدن یا میگویند به, خدا به خدایی برس به خدایی برسی خب این حقیقتی درش نموف است اما میتونم بگم شروع وقتانه برای بسیاری این فقط در, در حد یک یه سری واژگان یه سری کلامه حالا در نهایتش روشناندیشانه حالا روشنای باقی میمونه ولی این،, این به چه مفهومی است چگونه آدم به خود به خود باید برسد تا به خدایی برس. الان خب سخن دراز است در این ولی اگه کوتاهش بکنم این داستان این که همه جهان یکانه است و هم هر چیزی که در این جهانی که ما میشناسیم برحال چون میشناسیم چون اونایی که در حرف در حد ناخته ما به اون صورت نیستن ولی بر روی زمین خودمون رو نگاه کنیم اینجای که ما انسانها خودمون رو برترین آفریده های حالا خدایی میدانیم ما با هر که در پیرامون ما هست همه از یک جنسیم از یک ریشه این، از یک سرچشمه آمدیم آن سرچشمه آفرینش که حالا ما بهش خدایی یا مزده هر چیزی میدیم همه از اون جنس هستیم خب این هم باز اگه در حد شعار باقی نمونه، یعنی بره تو بینش بینش یعنی چی؟ یعنی چیزی که از درون میاد وحومند، بینش بینش همون دعیناست وقتی از درون ما بیاد، وقتی این برامون جا افتاده باشه مفهوم باشه که وقتی من میگم یگانگی، وقتی من میگم که من و شما با هم یگانگیم و سرنوشتمون اصلا جدایی نداره این باید از یک شناخت عمیق جرس و درونی بیاد تا در حد یک گفتار تو خالی باقی نمونه هر زمانی که به اونجا رسیدیم آن زمان اون همازوری ها، اون هماهنگیها اون همفهمی ها اونها شکل راستین و باقی به خودش بودید و به نظر من خیشکاری یا مسئولیت یک بهدین، یک بهمنش، یک زرتشتی یک مزدی اصلی در واقع آن هست که اون یگانگی رو نخوض در خودش برقرار کنه آن چیزی که حالا دو انگلیسی بهش میگن یعنی اینکه که تضادهای درونی خودمون از بین رفته باشه و به یگانگی درونی رسیده باشیم و این یگانگی درونی به دیرون باز تابیده بشه و اون هنگام هست که خیلیه خوشبختی من در خوشبختی دیگران هست اگر شما روی خوش در زندگی به خود نبینی من هم نخواهم دید این باز در یک حد یک شعار یک آرنگ باقی نمی ماند. بعد که این هم میشه یک واقعیت میشه حقیقت میشه عشام حقیقت است. راستی یعنی حقیقت حالا به فارسی و به تازی حالا بخوایم بگیم داریم واقعیت داریم حالا در بیشتر حیرت رو در یک ابسرک نگاه میکنیم واقعیت رو در کانکریت یعنی در جهان حالا دیتبی یا مادی بخواییم نگاهش بکنیم ولی باید به دنبال حیرت چیزی که بر... حد دقیق من باز میگم همیشه این اول بگم هر چی من میگم آن فهم من آن برداشت های منه، آن, آن آموزه های منه، از این آیین از, از این دین، از این فرهنگ، از این جهان دید. خب. همه این باید در واقع درونی بشه، آن بینش بشه، بینش با وقتی میگیم باز از درون میگیم، اینکه ما باز های شعال بدیم که ما هدف ما هدف دین توش خوشبختی است، آری خوشبختی است. این خوشبختی چگونه میاد؟ از کجا میاد؟ ولی وقتی راهش یاد گرفتیم و به اون اوشتا به اون خوشنودی در اون رسیدیم کسی که به اونجا برسد دیگر بدی درش راه نداره انسانی که حالت خوب داشته باشد، حالت خوشایند داشته باشد رضایتی درونی داشته باشد خود به خود دیگران رو هم مانند خودش می‌کنه خود به خود بدی دیگران را نمی‌کنه خود به خود بدی درش راه ندارد پس اینکه هی بیایم بخوایم یکی یکی بگیم بد چیست خوب چیست این کار بد است این کار خوب است اونها دیگه برمیگرده به یه سری خب یه سری اخلاقیات کلی یه سری قواعد اجتماعی ولی باز همون قانونمندی‌های اجتماعی هستن که باید اونها رو سازمان بدن ولی برمیگرده به اینکه که در خودم من چه احساسی داشته باشم بنابراین برمیگردم حالا دوباره سر نخون سر کیسر میبندم میام توی این یگانگی که زیاد دور نشیم مثلا پس بنابراین یگانگی رو وقتی از کردیم وقت خمازوری رو با هم حس میتونیم می میدانیم که امروز حالا از یک سو شروع وقتانه آنچه که بر سر میهن ما آمده آنچه که همه ما گواهش هستیم سالهاست هر روز به گوناگون از یک سو همه به اونو تلخ کرده از یک سو آرامش زندگی رو از خیلی ها گرفته و خیلی ها به دنبال آرامش از دست رفته هستن و هستیم و خب این باز جای شادی داره که در پس پی... یعنی میدانیم یا حداقل ناخداگاه اینو درک کردن خیلی که این آرامش در کجا میتونه نفته باشه یعنی ضد آن بدیایی که امروز داره در واقع به ما میاد از یک سو اب باعث میشه که زیر این نام، زیر این چتر خیلی چیزا بیاد از میگم از داستان خدا و خداشناسی گرفته تا عرفان تا معنویت تا مسائل سیاسی تا مسائل اجتماعی همه اومده زیر چتر یک نام و روی کرده همه ما هر کدوم از شما خودتون به خودتون پاسخ بدید که روی کرد شما به این آین به این جهان بینی از چه سویده ولی هر جوری هم که باشه همه ما یعنی همه امسان ها در واقع باز به دنبال اون خوشنودی درونی هستن به دنبال اون آرامش درونی هستن آرامش که از ما گرفته شده چه کم در آرامش اجتماعی از ما گرفته شده ولی چه کار باید بکنیم؟ آیا همباره باید در نداشتن اون آرامش خازمانی و گروهی و اجتماعی همواره ما هم در تنش و در استرس و در برخورد و اینها باشیم چون اینا روی بیرونی بیرونی دیگه. چرا خیلی ها در, در فضای مجازی یا در برخوردها دیده میشه که کم تا شدیم در برخورد با هم دیگه چیزی گفته میشه یعنی من همیشه اینجوری بودم شاید دستکم همینجوری من بتونم غیر مستقیم شاید پاسطوکی داشته باشم برای یک سری از شما که شاید توی این مدت حالا به شکل مختلف چرا این با اون خوب نیست چرا این فلانه حالا من هیچ وقت پرگز دستکم در احساس خودم در بینش خودم در درون خودم با هیچ کس من نه به معروف دشمنی داشتم و دارم چه اصلا نیست در وجود من. خب همیشه این دیگران بودند که از پیرامون همیشه میسازن درها این پس این از اون خوشش نمیاد به خاطر اون موقع این چیزه گفت یا اینجوری نه اینطوری نیست دست کم از دیر من اما از آنجا که به هر روی این جامعه بر تن من شده از هم به خاطر یک در واقع یک تاریخچه خانوادگی که دستکم کم 14-15 پشته پشت من اون بود. بودم حالا در حال این پدر من نبود ولی خوب پدر بزرگم بود و خوب دیگرم حالا نه اینکه فقط به همین خاطر بوده برکه حالا نیازهای جامعه زرتشتی بوده در اینجا، نبودن راهنمایان دینی بوده، آیی بوده و و خب مسئله دیگر باعث شد که من در این راه قدم بگذارم و خب این جامعه را برتن بکنم ولی و هر روز چه از روز نخست، چه تا به امروز اون هدف شخصی من همواره آموختن بوده آموختن و بیشتر آموختن از اینکه از این, این چیست، این چیزی که باید گزینش آزاد من باشه پس. این چیست؟ من برم درست بشناسمش نخست و بعد اگر سخنی میگویم با دیگران دستشم، کم یک درصد بدانم که دارم چی دارم میگم شروبختان این گفتار نیک اینم باز مفهومش شناخته نشده چه گفتاری نیک است؟ همه ما همه چیزدان شدیم یه اینقدر بلا سرمون اومده از یه طرف نه به اون که سری میگیم نه آقا جان من وارده به قول آقا معروف من سیاست نمیشم به خاطر که قرآن بهمان اعی طرف میگیم آقا زندگی ما همه سیاسی شده ولی زیادی سیاسی شده برای این خیلی یعنی زیادی به این معنی فکر کنیم که فکر میکنیم که ما همه چیز میدونیم درسته در, در گوگل، در اینترنت همه چی هست ولی این مسئله گذینه درست است و گذینش درست از میان اطلاعات زیاد باز به یه فخدگی نیاز داریم ما وقتی این سیر امشاستندان رو اگر نگاه کنیم اگر ما از فحومن و 8 و 18 و بگیریم اون ستای نخست تا بعد سپنتار اون آرامشه بدم بیاد آرامش که افزاینده است و سپس حروتات، امرتات دسته کم اون ستای نخست باید فراهم باشه اون نخست این به نظر من پیشنیازه این هست که اصلا آدم بخواد بیاد چیزی بگه یعنی تا انسان به یه پختگی نسبی نرسیده باشه تضاوتهاش نه اینکه آدم دهانش رو ببند چیزی نه آزادی هست آدم باید بیاد بگه این گفتن ها باید شنیدن هم داشته باشه اینکه هم مشکلات ما این میشه که فقط میگیم فقط نمیشنبیم یعنی این شنیدن اکتیف شنیدن کنشمندانه در واقع در خیلی از انسان ها نیست نه فقط ما ما فقط حرف برای گفتن داریم ولی گوش شنیدن نداریم پس پشنبیم اول سعی کنیم که بفهمیم تا انتظار داشته باشیم که فهمیده بشه یا میخوام اینجوری بگم در واقع دویدو تا خیلی مهم هست که باز در نزدیکی و یگانگی و نزدیک شدن انسانها به هم نرش داره به اینجور وقتی که توی یک حوله هوش یک داستان آدم میچنخه مسئله چگونگی انتقاد کردن یا خورده گرفتن یا حالا از چیزی رو گفتن و چگونه یه انتقاد پذیری چگونه یه ای شنیدن این دو خیلی مهمه که آدم وقتی یه چیزی رو میخواد بگه در, برا... در مورد یاری تازه اگر ازش خواسته بشه نه اینکه آدم همینجوری در مورد همه بیاد نظر بده وقتی هم اگر چیزی میگه اولا فکر کرده باشه چند بار فکر کرده باشه جوانا به مختلف قضیه نگاه کنه آدم چگونه میتونه جوانای مختلف قضیه ببینه وقتی اون پرسپکتیو ها رو پیدا کرده باشه وقتی تجربه کرده باشه بعد اگر هم از کسی گلایهی شنید خودهی شنید گفتداری شنید که دوال در حد یک انسان بالغ سخن, سخن بالغ با بالغ پخته با پخته باشه بعد اون وقت باید بشنویم بلا باید بشنویم و سعی کنیم درک کنیم که طرف مقابل از چه روی این سخند رو گفته در خودمون اگه میخوایم تحضیح تحضیحش کنیم بالا پایینش کنیم و بعد به شکل ترست و منطقی قول محروف پاسخی داده بشه. حالا رو همه رو گفتم و میخوایم سرانجام به این نتچه برسم در این بخش سخن که همه ما، عادی من به هر روی همه ما راهمون یک راه و سعی کنیم که در گفتارمون با هم دیگه اولا راست باشیم صادق باشیم این رو راستی یکی از چیزای راستیست دیگه رو راستی هم باز از درون رو راست میاد جایی که تزویر و دروغ و ریا و همه اینا باید بره کنار و راستی بیاد جاشو بشینه و راستی هم در حد مسئولانه سخن رو با هم وقتی بگیم سخن در حد درست بگیم با میگم با پذیرش مسئولیت و پیشکاری سخن رو بگیم و بشنویم و آماده شنیدن پاسخم باشیم هدف است هدف پخته کردن خود و به خود معرض اون خود درونیمون باشه که برسیم به یه پختگی که بتونیم دست کم نخوس مسائل زندگی و درونی خودمون رو به درستی حل کرده باشیم و وقتی پامون رو در داخل جامعه می‌ذاریم در داخل گروه می‌ذاریم اون نقطه های مثبت خودمون رو بیاریم وسط بذاریم و همه اون توانایی‌های خودمون رو وسط بذاریم و فقط یه مدیریت درست بخواد که بتونیم اون توانایی‌ها رو برای حل کردن مسائل و مشکلات در واقع همه اون جامعه به کار دید.